برلین، آلمان، یکی دسامبر 1939 در میدان پوتستامر پلاتس از اتوبوس پیاده شدم و به طرف خیابان شاهزاده آلبرت رفتم. برفی که اصر بارید پیاده روی خیابان را رو سفید بوش کرده بود. از سوز سرمایه دسامبر برلین صورتم زده بود. پالتویم را محکم دور خودم پیچیدم. با آن ساختمان پر اوباحت و ترسناک نزدیک می شدم. تقریباً صد قدم تا ورودی ساختمان دفتر مرکزی امنیت رایش سوم فاصله داشتم حدود یک ماه از استخدام من در اینجا میگذشت با وجود هنوز هم وقتی به محل بازرسی بدنی در مقابل ورودی ساختمان می رسیدم غریب همه وجودم را فرا گرفت به خودم می که جزی از سیستم امنیتی آلمان بزرگ هستم امروز برای من روز خاصی خواهد بود چون قرار است اطلاعاتی را که به دست آوردم گزارش دهم نفس عمیقی کشیدم سرمای خیابان حالا جای خود را به گرمای ساختمان سازمان امنیت داده بود. همانطور که از سالان اصلی رد می‌شدم، های پالتوی‌ام را باز کردم و به طرف دفترم در طوقی همکف رفتم. از روزی که رئیس جو... انجمن جوانان آلمان به من خبر داد که من را برای کار در دستگاه امنیتی انتخاب کرده است، احساس افتخار و ترس با تمام وجودم را فرا گرفته بود. با توضیح مختصری درباره این شغل و نوع کارم کمی برایم حرف زده بود. چند بار تاکید کرد که ساعت 9 صبح اول نوامبر در همان آدرس مشهور حاضر باشم حتی اسم کسی که به او ملاقات خواهم کرد را به من نداد فقط گفت که نام من فقط گفت نام من در ورودی امنیتی سازمان ثبت شده و کسی که در آنجاست مرا نزد شخصی که منتظرم است خواهد برد لیلیان اشمیت لبخند از صورت شخص امنیتی معف شد و در برگه هایی که دست دسته در مقابلش قرار داشت نام را جستجو کرد سپس بلند شد و ایستاد جلوتر از من به راه افتاد و گفت دنبالم بیا خیلی زود خود را مقابل کارمندی عابوسسی یافتم که پشت میزی که به نظر مهم میآمد در طبقه همکف نشسته بود وقتی سربازی که مرا همراهی کرده بود نامم را گفت کارمند رو به من کرد و گفت همینجا منتظر باش این رو گفت و به صندلی مقابلش اشاره کرد تا بنشینم قلبم به شدت میزد. محو شکوه و عظمت اطرافم شده بودم. با وجود نگرانی درونم از احساس شادی و غرور پر شده بود. زیرا چیزی نمانده بود که من هم جزی از این عظمت دستگاه بزرگ امنیتی آلمان شوم. لحن دستوری کارمند دوباره به گوشم رسید. در حالی که به ورودی اتاقی که مقابلش ایستاده بود را برایم باز میکرد رو به من گفت: آقای اشمان میخوان شما رو ببینن. وارد اتاق شدم. میز بزرگی وسط اتاق قرار داشت و مردی پشت میز نشسته بود. سرش را خم کرده و مشغول مطالعه بود اوراق پروند که در دست اوراق پرونده در دست چپش قرار داشت چند قدم برداشتم و جلوتر رفتم رو به رویش ایستادم هنوز غرق مطالعه بود چند لحظه گذشت سرش را بلند کرد با نگاهی موشکوفانه برازام کرد اشاره اشارکت بنشینم همچنان سکوت کرده بود برگ های پروندههایی که پرگاه های پروندههایی را که منظم و با دقت در گوشه از می چیده بودند زیرو رو پرونده ها از سمت چپ او روی هم فشرده بود. سمت راست او دسته برگه سفید و در کنار آن دو خودکار قرار داشت. ستون مرکب سیاه ها تا ته پر بود. لیلیان اشمیت سرم را به نشانه تایید نامم تکان دادم. سابقت خیلی خوبه. عضو فعالی توی انجامم بودی. های خوبی هم در انجمن داشتی. نمیدونستم چه پاسخی بدهم، و اصلا چه پاسخی مناسب است؟ من به یک منشی خوب نیاز دارم. مهمترین چیزی که میخوام نظم و انضباطه. در کار من جایی برای اشتباه وجود نداره. سعی به نشانه موافقت تکان دادم و با لغنت گفتم البته. با یهودی ها چقدر ارتباط داری؟ از سوال نگاهانیش شگفت‌زده شدم. سکوت کردم. دوست یهودی هم داری؟ در مدرسه و بین هم... بعضی همسایه ها دوستانی داشتم اما بعد از اینکه متوجه ای کارهای اونا و خطرشون برای کشور شدم ارتباطم رو کاملا قطع کردم. پدرت جنرال اشمیت زیادی با اونها مهربونه. نمیدونستم این سوال بود یا فقط نوعی اطلاعات. اما من برای آن جواب داشتم. پدرم رو به خاطر همین موضوع بازنشسته کردن. شاید این در پرونده‌ام باشه قربان. آلمان و عظمتش برای من از هر چیز دیگه‌ای حتی پدر مادرم مهمتر و با ارزش‌تره. هیچ وقت از این مهربونی پدرم با یهودی‌ها رضایت نداشتم. به خاطر همین موضوع هم مدتی با هم حرف نمی‌زدیم و قهر بودیم. چه چیزی باعث شده به این مهربانش چنین احساسی داشته باشی؟ حادثه ای که شبی که ریستال اتفاق افتاد. اون موقع برای نجات دختر همسایه یهودی اون رو،, اون رو به خونه ما آورد. دوباره سکوت برقرار شد. بار دیگر با نگاه دقیقش براندازم کرد. بعد هم دوباره برگشت به مطالعه محتویات پرونده. بسیار خوب لیلیان، به هر از فردا کارت رو شروع می الان برو پیش آقای وظایف رو بهت میگه در همان حال پرونده مازیر پرونده هایی که روی میزش بود قرار داد <تصفح> بعد یک پرونده دیگر را بیرون کشید آن را باز کرد و شروع به مطالعه نمود. چند لحظه سر هم ماندم متوجه شدم گفته مان تمام شده است فوراً از جا بلند شدم و به طرف در رفتم قبل از این اینکه در را باز کنم دوباره شروع به صحبت کرد مجبور شدم بهیستتم آخرین توصیه را می آورد قوله تو در اینجا کاملا محرمان است. گوشکتان اشتباهی به منی خیانته و محاکمه میشی. به کسی نگو کارمند اینجا هستی یا با من کار میکنی. اسم من رو به هیچ کس نگو، حتی به پدر مادرت. به اونها بگو که کارمند اداری مثل مثلا بیمارستان عمومی هستی. فهمیدیم؟ زنده با تیتلر تنها یک ماه حضور در محل کار جدید کافی بود تا از خطرات بسیاری که کشورم آلمان را تهدید می‌کرد آگاه شوم. بعد از آن بود که دانستم چه کسانی عظمت و مجد آلمان را نمیخواهند و دوست ندارند کشور همچون گذشته و اگونه که شایستهش است بزرگ و با عظمت باشد. کار با آقای آیشمن مدیر اداره امور مربوط به یهودیان به من کمک کرد تا به اونق شروری و بدذاتی یهودی ها پی ببرم هر روز بیشتر و بیشتر در میافتم که باید از آنها دوری کنم تا از شرارت هایشان باشم. برنامه‌ای که آشمان روی آن کار می‌کرد این بود که همه یهودیان را جمع‌آوری کرده و آنها را وادار کند به ماداگاسکار مهاجرت کنند. این کار وقت زیادی می‌گرفت زیرا نیازمند نامنگاری با مقامات بالاتر و برگزاری جلسات متعدد با افرادی بود که به نوعی به موضوع مرتبط می‌شدند. در همان زمان دستورالعمل‌هایی هم برای محاصره آنها و جمع‌آوریشان در محله‌ها و مناطق مشخصی در آلمان و لهستان و دی... و دیگر سرزمین هایی که هیتلر تحت ستر خود درآورده بود صادر می شود. و حالا من هم در امر شهر دشمنان وطنم مشارکت خواهم کرد دیشب قبل از اینکه بخوابم گفتگویی که در خانه در درید ج... داشت را شنیدم از همون لحظه در تصمیمم برای انجام این کار تردید نداشتم نمی بخوابم و تا صبح صبر کنم میخواستم هرچه زودتر آن چه که و تنپرسی هم ایجاب می کند و انجام دهم ده بلا فاصله بعد از اینکه پرارت را آویزان کردم به دفتر فرماندم رفتم تا آنچهرا که شب قبل شنیده بودم برایش مفصل توضیح دهم.